قدرت فشار چرا فشار مشکل نیست بلکه یک راه حله؟ کتاب قدرت فشار که در سال 2021 به چاپ رسیده به دنیای فشار در همه اشکال اون و نحوه برخورد افراد موفق با اون نگاهی عمیق میندازه این کتاب با توجه به الگوهای هر دو لحظه فشار عادی و اوج اون در مسیر مجموعه ای کاربردی از ابزارها رو در اختیار شما قرار میده تا با استفاده از اونها از فشارهای مختلف زندگی به نفع خودتون بهره ببرید. پس اگر شما هم از کارمندان و کارگرانی هستید که احساس غرق شدن در کارهای روزانه خودتون رو دارید به دنبال افسایش و بهبود عملکرد خودتون تحت فشار هستید و یا تا به حال تحت فشار استرس قرار گرفتید به شما پیشنهاد می کنیم که به این خالص کتاب گوش بسپارید. میکرو شماره یک یاد بگیرید که چگونه از فشار به نفع خودتون استفاده کنید. قلب شما در حال تپش و پمپاژ خون در تمام بدن شماست. وقتی عصبی میشید معلوم نیست بعدش چی میشه شما خودتون رو برای مقابله با یک لحظه پر از فشار و استرس آماده کردید اما اکنون که زمان اون رسیده همه اون آمادگی ها ناگهان ناپدید میشن و شما رو تنها میذارن چرا این همه تنش؟ به احتمال زیاد شما خودتون رو در یک موقعیت پر فشار قرار دادید اما چه در حال انجام یک عمل جراحی باشید؟ چه شرکت در بازی المپیک یا ارائه یک سخنرانی مهم؟ به نظر میرسه فشار همیشه راه خودش رو به درون ما پیدا میکنه. اما خبر خوب اینه که این فشارها لزوماً یک مسئله منفی نیستند. در این خلاصه کتاب خواهیم آموخت که چگونه فشار با اتخاذ یک رویکرد و طرز فکر صحیح واقعا میتونه مفید باشه و حتی سطوحی از عملکرد رو که در غیر این صورت دست نیفتنی به نظر میرسن به روی ما باز کنن. در این میکرولین به چنین پرستشایی پاسخ داده میشه. کدوم سه معلفه همیشه در کنترل شما هستند؟ چرا مدیریت بهتر زمان، یک تل است اثرات دراز مدت فشار و استرس بر سلامتی چیه؟ میکرو شماره دو فشار از ترکیبی از شرایط بسیار مهم و نامشخص ناشی میشه بیشترین فشاری که تا به حال تجربه کردید چی بوده؟ این سالیه که دین جنسن نویسنده این کتاب با بیش از هزار نفر مطرح کرده نیز از شرکت در یک مسابقه اسکیت گرفته تا آزمون و مساحبه های شغلی متفاوت بوده. پرفشار ترین لحظه در زندگی برای یک نفر امتحان نهایی بود و برای دیگری مربوط به زمانی بود که سعی می‌کرد با وجود احساس غرق شدن و خفگی خودش رو به ساحل برسونه. در حالی که همه لحظات پرفشار منحصر به فرد هستند اما با چند ویژگی مشترک کلیدی به هم گره خوردن. در واقع هر تجربه پرفشار سه عامل رو در خودش داره. اهمیت، عدم قطعیت و مشغله. منظورمون از مشغله تعداد وظایف یا مقدار اطلاعاتیه که باید پردازش بشه. بیایید نگاهی دقیق تر به نحوی عمل کرده فشار بندازیم. فشار اغلب با استرس همراه میشه اما یک تمایز بزرگ بین این دو وجود داره نیاز به انجام یک کار این سناریو رو در نظر بگیرید شما با استرس و تنش بسیار در حال تماشای بازی حذفی تیم بسکتبال مورد علاقتون هستید به این امید که برنده بشه این به معنای اینه که شما در حال تجربه استرس هستید اما مهم نیست که بر سر تلویزیون چقدر فریاد بزنید این کار شما در نتیجه اون بازی تأثیری نخواهد داشت اما اگر عضوی از بازیکنان حاضر در اون بازی باشید چیزی که تحمل می‌کنید و در حال تجربه اون هستید فشاره و این عملکرد شماست که می‌تونه تفاوت میان برد و باخت رو رقم بزنه هر موقعیت پرفشار می‌تونه به اندازه یک مسابقه حذفی بسکتبال پرتنش باشه همه چیز به این بستگی داره که نتیجه چقدر برای شما مهمه. شاید در حالی که خود پروژه شاید برای شما اهمیت خاصی نداره، اما کاری که انجام میدید فشار زیادی براتون ایجاد میکنه. زیرا همچنان برخی از جنبه های اون کار براتون مهم هستن. به عنوان مثال اینکه شما از عهده اون کار بر یا اینکه که نکنه دیگران شما رو فاقد صلاحیت بدونن میتونه میزان اهمیت یک اقدام رو مشخص کنه عدم اطمینان نیز در ایجاد فشار نقش داره اگرچه عدم اطمینان به خودی خود بد نیست به عنوان مثال هنگامی که در حال تماشای یک فیلم هستید ندانستن اونچه در ادامه رخ میده بر حس تعلیق و هیجان شما اضافه میکنه اما فرض کنید شرکت شما با شرکت دیگری ادغام میشه و مدیران اعلام میکنن که نیمی از کارمندان اخراج خواهند شد این عدم اطمینان به احتمال زیاد فشار شدیدی را برای شما ایجاد خواهد کرد همچنین عدم اطمینان را به سایر جنبه های زندگی شامانیز نیز اضافه میکنه. در نهایت یک محدودیت برای اونچه میتونید واقع بینانه روی اون تمرکز کنید وجود داره. اگر مسئولیت های متعددی رو در خونه و محل کار بردوش می کشید و بر عهده دارید، مثلا تربیت یک کودک در حالی که شغلی تمام وقت دارید قطعا فشار زیادی رو تحمل می کنید. برابر این سه مؤلفه اهمیت، عدم قطعیت و مشغله در کنار هم قرار می‌گیرند تا انجام یک کار تحت فشار رو بسیار دشوارتر کنند. میکرو شماره 3 فشار هم واکنش فیزیولوژیکی و هم واکنش روانی ایجاد میکنه تصور کنید برای انجام مصاحبه در شرکت رویایی خودتون دعوت شدید. برای رسیدن به این نقطه زمان زیادی طول کشیده و های گذشته رو صرف بررسی سوالات احتمالی در مصاحبه کردید اما هنگامی که وارد اتاق مصاحبه میشید، خشکتون میزنه. ذهن شما خالی میشه و دسترسی به تمام اون پاسخ‌های متفکرانه‌ای که آماده کرده بودید رو از دست میدید. نیازی به گفتن نیست که این مسئله موجب میشه تا شما نتونید بهترین عملکردتون رو بروز بدید و اون شغل رو از دست میدید چند دقیقه بعد در حالی که در آسانسور هستید همه چیز ناگهان به ذهن شما برمیگرده این در حالیه که اگر فقط ده دقیقه پیش این پاسخها به ذهنتون میومد، کار رو تصاحب کرده بودید اما الان خیلی دیر شده این یک داستان آشنا برای بسیاری از کسانی که فشار رو تجربه میکنند. اما با درک اینکه چگونه فشار بر ذهن و بدن شما تاثیر میذاره، میتونید یاد بگیرید که در آینده واکنش خودتون رو نسبت به چنین موقعیت هایی تغییر بدید. هنگامی که تحت فشار هستید، بدن شما معمولاً با افزایش سرعت تنفس به این وضعیت واکنش نشون میده. با افزایش ضربان قلب خونه بیشتری به قلب شما هدایت میشه و دمای محیطی شما مثلا دمای دستها و پاها و سایر اندامهاتون کاهش پیدا میکنه ممکنه شروع به عرق کردن کنید و شانه ها و سایر ازالات شما کمی سفت بشن در کوتاه مدت این اتفاق فقط به این معنیه که عملگرد شما آسیب می اما در دراز مدت با افزایش سطح هورمون کورتیزول، ناشی از استرس، کلسترول فشار خون و قنده خون بالاتری رو تجربه می کنید که همگی منجر به کاهش امید به زندگی میشن. وقتی بدن شما به این صورت واکنش نشون میده توجه شما نیز محدود میشه. مغز شما به طور مداوم تصمیم میگیره که کدوم اطلاعات حسی مثل صداها، مناظر، بوها و غیره رو بپذیره و کدوم رو نادیده بگیره. این به عنوان دروازه حسی شناخته میشه. بدون اون همه ما تحت فشار بیش از حد هر محرک کوچیکی قرار میگیریم. اما زمانی که تحت فشار قرار میگیریم، مکانیسم دروازه حسی بسیار محدودتر میشه. به این ترتیب ذهن نوعی دید تونلی ایجاد میکنه و تمرکز شما محدود میشه به طوری که حتی واضح ترین اطلاعات هم محدود شده و از دست میرن دروازه حسی شدید جذب و یادگیری اطلاعات جدید رو دشوار میکنه و همچنین خلاقیت و ظرفیت شما برای همدلی و مهارت هایی که در موقعیت های فشار مفید هستند رو محدود میکنه در دراز مدت این کاهج توجه میتونه حتی به حالت پیشفرض شما تبدیل بشه و بر رضایت از زندگی روابط اجتماعی و سلامت عاطفی شما نیز تأثیر بذاره. بنابراین فشار ممکنه شکست ناپذیر به نظر برسه اما در حالی که برخی شرایط خارج از کنترل شما هستند فشار یک تجربه درونی و به همین دلیل میتونید نحوه واکنش خودتون رو نسبت به اون تغییر بدید میکروی شماری چهار ابتدا با تشخیص اونچه در خطر نیست به لحظات اوج فشار نزدیک بشید. بر اساس اونچه گفتیم اگر فشار برای سلامتی شما موزر و خطرناکه مطمئنا باید برای مواجهه با اون کاری انجام بدید. هنگام مواجهه با فشار چندین مرحله وجود داره که میتونید برای مدیریت پاسخ و واکنش خود در نظر بگیرید. اول اینکه میتونید با شناسایی نوع فشار شروع کنید. دو نوع فشار اصلی وجود داره، یک موقعیت فشار کوتاه مدت که به اون لحظه اوج فشار میگن که به عنوان مثال شامل یک رویداد پر فشار ماننده، یک مسابقه ورزشی یا یک مصاحبه شغلیه و نوع دیگری به نام فشار دراز مدت که به اون فشار در مسیر گفته میشه که معمولا در نقطه اوج فشار ایجاد میشه. حتماً به یاد دارید که فشار از سه عنصر اصلی اهمیت، عدم اطمینان و مشغله تشکیل شده پس هنگام مواجهه با یک لحظه اوج فشار با بررسی اولین مورد یعنی اهمیت اون شروع کنید به اون مثال مصاحبه شغلی فکر کنید که یک لحظه اوج فشار رایجه چه کاری میتونستید انجام بدید تا از واکنش پیشفرز خودتون به اون فشار فرار کنید؟ مسئله واضح بود اگر در مصاحبه عمل کرده خوبی داشتید استخدام می شدید. اما تمرکز روی مخاطرات اغلب نتیجه عکس میده و فقط به میزان فشار اضافه میکنه و اهمیت نتیجه رو بزرگتر از چیزی که هست نشون میده در این مواقع اولین قدم اینه که دقیقاً برعکس عمل کنید یعنی تمرکزتون رو بر چیزی بذارید که در خطر نیست کمی از مسئله فاصله بگیرید و مشخص کنید که چه چیزی در زندگی شما بدون توجه به نتیجه این وضعیت تغییر نخواهد کرد آیا هنوز هم با شریک زندگی، فرزندان یا خونواده و دوستانتون رابطه خواهید داشت؟ در مورد سلامتی شما چطور؟ آیا در همین وضعیت فعلی باقی میمونه؟ آیا هنوز هم تقریبا از نظر مالی در امنیت خواهید بود؟ به این چیزها در زندگی خودتون که به عنوان نیروهای لنگر نامیده میشن فکر کنید و از اونها به عنوان یک وزنه تعادل در برابر لحظه اوج فشار استفاده کنید. گاهی همین کار کافیه اما برای سایر لحظات اوج فشار این تکنیک نمیتونه احتمال شکست رو به طور کامل خونسا کنه. اگر این روش مناسب نبود، برای جلوگیری از تبدیل شدن استراب به وحشت میتونید با پرسیدن سه سآل کلیدی روانشناس خودتون باشید ابتدا به شکل انتقادی به اون چرا که فکر میکنید در خطره نگاه کنید مثلا از خودتون بپرسید که چه شواهد محکمی وجود داره که نشون بده این وضعیت واقعا یک نقطه یاستی پذیره دومی که تصور کنید که میخواهید در مورد همین وضعیت مخمسه آمیزی که دارید به شخص دیگری مشاوره بدید اگر یکی از اعضای تیم شما در یک سخنرانی اشتباه کنه آیا واقعا فکر میکنید که اون یک شکست کامل رو موجب شده؟ سوم اینکه اگر مطمئن نیستید که چیزی در خطره این سوال رو از خودتون بپرسید که با فرض این وضعیت که چیزی در معرض خطره چه ارزش و نتیجه به بدست میارید. تمرکز بر اونچه واقعا مهمه نقطه شروع خوبیه اما بخش بعدی معادله فشار به تاکتیک دیگری نیاز داره که مدیریت عدم قطعیت با اقدام مستقیمه. میکرو شماری پنج در مواجهه با عدم قطعیت اوج فشار باید روی آنچه میتونید کنترل کنید تمرکز داشته باشید. یک روز مرکز آسیب در بیمارستان سنت مایکل در تورن کانادا یک بیمار رو در شرایطی وخیم پذیرش کرد. قلب بیمار با ضربه چاقو آسیب دیده بود و چند دقیقه قبل از رسیدن به بیمارستان دیگه نبض نداشت. اما هنوز یک راه برای نجات این قربانی وجود داشت و اون روشی خطرناک به نام توراکوتومی بود که در اون پزشکان خون رو از اطراف قلب خارج میکنن دکتر اندرو پتروسونیاک پزشک اورژانس و رهبر تیم اورژانس باید سری عمل میکرد جراح هنوز در اورژانس حاضر نبود. بربر بر این او و تیمش اقدام به انجام می کردند و بیمار را برای جراحی آماده و اقدامات لازم برای کاهش خونریزی را آغاز کردند. تا زمانی که جراح به اورژانس اومد، بیمار برای عمل جراحی آماده شده بود. و از اونجایی که تیم اورژانس بر شرایط خارج از کنترل خودش مانند احتمال بقای پنج درصدی بیمار تمرکز نکرده و برای اونچه میتونست شرایط رو تغییر بده تمرکز کردن، بیمار زنده موند. البته این مثال از بیمار چاقو خورده در بیمارستان سنت یک مثال افراتیه اما بر قدرت در نظر نگرفتن هر آن چیزی که تحت کنترل شما نیست اشاره داره تمرکز بر روی چیزهایی که نمیتونید تغییر بدید اغلب عدم اطمینان موقعیت رو تشدید میکنه در عوض به خودتون یادآوری کنید که سه چیز همیشه در کنترل شما هستند: روال و برنامه شما، تنفس و دیدگاه شما یک ربال و برنامه منظم ساختاری ان پذیر برای انطباق با شرایط نامطمئن در اختیار شما قرار میده. تیم دکتر پتروسانیاک یک ربال توجیهی داره که 5 دقیقه اول در مواجهه با چنین شرایطی رو برنامه‌ریزی کرده. این ربال به تیم اورژانس احساس کنترل رو از همون ابتدای کار الغا میکنه. تنفس شما اگرچه امری خودکاره اما تحت کنترل شماست. تنفس در لحظات اوج فشار سریع میشه. اما با کاهش آگاهانه و عمیق‌تر کردن نفس مثلا شش بار تنفس کامل در دقیقه به جای دوازده بار معمول، ضربان قلب شما این شانس رو داره که دوباره با تنفس شما هماهنگ بشه. این کار انسجام نامیده میشه و به قلب و مغز شما کمک میکنه تا با اثرات عوامل استرس به شکل فوری مقابله کنید. در نهایت دیدگاه و چشم انداز شما تحت کنترلتون قرار داره. وقتی چیزی را به عنوان یک تهدید میشناسید غیرقابل نفوذ به نظر میرسه اما میتونید با طرح چند سال کلیدی اون را مجددا قالب بندی کنید و یک رویه برای اقدام متقابل ایجاد کنید از خودتون بپرسید که از این تجربه چه میاموزید بعد از خودتون بپرسید در حال حاضر چه کاری میتونید انجام بدید تا پیشرفت کنید همه اینها نیاز به تمرین داره و همچنین شما را ملزم می‌کنه که با انصار نهایی فشار یعنی مشخله یا حجم کارها مقابله کنید. میکروی شماری شش منابع فشاری که حواست شما رو پرت می‌کنن یا به رشد شما کمک نمی‌کنن، از میان بردارید. یک لحظه به این فکر کنید که آخرین بار چه زمانی احساس کردید تحت فشار شدید هستید. احتمالا اونقدرها هم سخت نبوده درسته؟ کار بیش از حد و زمان ناکافی این روزها به یک گله بر شکایت تقریبا جهانی تبدیل شده و به طور فضایندهای راه حل اون روی آوردن به سمت مدیریت زمان معرفی میشه ایده اینه که اگر بتونید زمان خودتون رو به شکل موثرتری مدیریت کنید کمتر احساس خستگی خواهید کرد و وری شما بیشتر خواهد شد اما از منظر فشار این رویکرد کرده در واقع میتونه اوزار رو حتی بدتر کنه چرا که عادت داریم اون وقت و زمانی که آزاد میشه رو با فشار بیشتری پر کنیم برابر این راه حل این مسئله پرکاری بیشتر نیست بلکه کاهش حجم کارهایی که فشار کوتاه مدت برای شما ایجاد می کنن. به خصوص کارهایی که نتیجه مفید فوری ندارند. به این ترتیب تمرکز و انرژی لازم رو برای دریافت معنادارترین منابع اوج فشار رو خواهید داشت به سازماندهی منابع فشار خودتون مانند تمیز کردن خونه فکر کنید چیزی که ماری متخصص تمیز کاری همه چیز رو درباره اون اون میدونه در مرکز کاندو یک سال واحد وجود داره آیا این کار جرقه شادی می آفرینه؟ اگر نه باید کنار گذاشته بشه راه حل خرید یک کاماد بزرگتر برای جا دادن وسایل اضافی نیست کاری که معادل با راه حل مدیریت زمان در برابر فشاره بلکه در عوض از ایده برگزیدن مهمترین وسایل و رهایی از شر وسایل اضافی حمایت میکنه شما میتونید از این فلسفه به عنوان یک سکوی پرتاب برای تسهیل فشارهای سنگینی که بر دوش شما سنگینی میکنن استفاده کنید یک روی کرد اینه که چند سوال رو برای تمرکز بر اهداف خودتون به ببرید. برای هر منبع فشار از خودتون بپرسید که آیا این کار به رشد من کمک خواهد کرد؟ اگر این مسئله شما رو به یکی از اهدافتون نزدیک نمیکنه چه توجیهی برای حفظ و ادامه اون دارید؟ سوال بعدی منابع فشاری رو که حواست شما رو پرت میکنن فیلتر میکنه؟ آیا این موضوع به عملکرد من کمک می کنه یا به عملکرد من آسیب میزنه؟ زمانی که مارتا مکیب شناگر کانادایی در حال تمرین برای مسابقات المپیک 2012 لندن بود، تماسای تلفنی مداوم با خانواده و دوستانش توجه اون را از تمرین منحرف کرده بود. اما راه حل اون چی بود؟ حضر برنامه های, شبکه های اجتماعی، خرید یک سیمکارت جدید و دادن شماره تلفن جدیدش فقط به تعدادی از اعضای خانواده و دوستان منتخب. بدین ترتیب اون مجبور نبود تصمیم بگیره که کدوم پیام مهمه و کدوم یک رو میتونه بعدا جواب بده. شاید انجام راه حل مکیب برای موقعیت خاص شما عملی نباشه، اما میتونید های دیگری را برای ساده سازی و تسهیل شرایط و امور شناسایی کنید. همونطور که تیم فریس استاد بهر بری میگه ایجاد فضا در واقع یافتن یک تصمیم واحده که صد تصمیم دیگر رو کنار میزنه. همونطور که تیم فریست استاد بهر بری میگه ایجاد فضا در واقع یافتن یک تصمیم واحده که صد تصمیم دیگر رو کنار میزنه. میکررو شماره با تشخیص چیزهایی که برای شما اهمیت داره فشار رو در طولانی مدت مدیریت کنید. اکنون که به چند ابزار برای مدیریت لحظات اوج فشار مجهز شدید و روی بهترین عملکرد خودتون تمرکز می کنید باید بدونید که جنبه دیگری نیز در فشار وجود داره که در جایگاه دوم قرار گرفته و اون فشار در مسیر یا فشار دراز مدته. داستان ریک هانسن رو در نظر بگیرید. هانسن که در کودکی یک فرزشگار با استعداد بود، در پی یک تصادف قمنگیز از ناحیه کمر به پایین فلج میشه. اون پس از بهبودی شرکت در مسابقات با ویلچر رو آغاز کرد و در طول دوران حرفی خودش در 19 ماراتان بین المللی با ویلچر برنده شد و شش مدال در بازی های کسب کرد. سپس یک ایده دیوانهوار به سرش زد. اون میخواست جهان رو با ویلچر بگرده و همزمان ده میلیون دلار برای تحقیقات نخا جمعوری کنه و آگاهی مردم رو در مورد افراد دارای معلولیت افزایش بده. سفر هانسن 26 ماه طول کشید و اون 24 هزار مایل رو در 34 کشور طی کرد. در نهایت اون موفق به جمعوری 36 میلیون دلار شد. اما این سفر پر از کشمکش های روزمره بود. از آسیب دیدگی و مشکلات برای ویلچرش گرفته تا ناامیدی و شک و تردید نسبت به خود. اما هانسن چگونه از پس اون برومد؟ اون دائما به خودش یادآوری میکرد که از ابتدا به چه دلیل نیت به انجام این کار کرده و چرا این کار برای اون بسیار مهمه. وقتی که فشار تنها یک رویداد آنی نیست و یک دوری طولانی داره، شما به روی کردی نیاز دارید تا با انگیزه و متمرکز بمونید و این نیاز به یافتن معنایی داری که شما را به پیش ببره. شما میتونید این کار رو با بررسی اینکه هر کار آیا سه فاکتور اصلی معنا شامل رشد، مشارکت و ارتباط رو ارائه میده یا نه انجام بدید. مانند لحظات اوج فشار، اشاره درازمدت نیز باید به نوعی به شما کمک کنه تا به اهداف خودتون نزدیک بشید. برابر این هنگامی که کار روزانه باعث میشه احساس کنید در دام افتادید، به سادگی از خودتون بپرسید آیا این کار به رشد من کمک میکنه؟ هانسن در طول سفر خودش احساسات خودش را با کلماتی مانند ناامیدی، خشم و ترس توصیف میکرد. اما کاری که در حال انجام اون بود ارزش این احساسات رو داشت. همچنین میتونید معنا و رضایت رو در کمک به دیگران بیابید. به این فکر کنید که با تحمل این فشار به چه کسی کمک میکنید و یا زندگی چه کسی با تحمل این فشار بهتر خواهد شد. و در نهایت به خاطر بسپارید که این فشار میتونه به شما کمک کنه تا به کسانی که براتون مهم هستن نزدیکتر بشید. این اشکال معنایی فقط مربوط به تعامل بهتر فشار نیستند. اونها میتونن انگیزه عمیق‌تری برای دستیابی به اهدافتون در اختیار شما قرار بدن. و اگر در تلاش برای یافتن معنایی در فشار طولانی مدت خودتون هستید، شاید وقت اون رسیده که در وهله اول چرایی این چالش رو دوباره ارزیابی کنید. میکرو شماره 8 با پذیرش اینکه که آینده نامشخص و ناشناخته است عدم اطمینان طولانی مدت رو مدیریت کنید هنگامی که با اهمیت فشار در دراز مدت ارتباط برقرار کردید بعد چی میشه؟ این انگیزه شما رو در مسیر درست نگه میداره اما چگونه انرژی خودتون رو در مواجهه با عدم اطمینان دائمی حفظ کنید؟ برای عدم اطمینان اوج فشار پاسخ اقدام مستقیمه. اما در طولانی مدت این فقط به درماندگی بیشتر منجر میشه. باید آگاه باشید که آینده همواره یک موضوعی بی نهایت نامشخصه. بنابراین تلاش برای کنترل یا به حداقل رسوندن عدم اطمینان آینده یک نبرد از پیش باخته است. برخی به خوشبینی بیقید و شرط روی میارند و ایمان دارند که در آینده بهترین اتفاق براشون رخ خواهد داد اما این روی کرد میتونه یک ذهنیت شکننده ایجاد کنه که آماده شکسته شدنه در واقع مهم نیست که چه کسی هستید یا چه کار میکنید آینده نامشخص باقی خواهد ماند بربر این به جای کنترل عدم قطعیت بهتر اون رو بپذیرید بهترین رویکرد کرد برای عدم قطیت در دراز مدت مستلسم حفظ دو ایده در ذهن شماست که اون چرا که نویسنده پارادوکس عدم قطیت نامه تشخیص میده اولی کنار اومدن با این واقعیت که شما نمیتونید بدونید آینده چه چیزی در آستین خودش خواهد داشت نگرش دوم تا حدودی متناقضه و اینه که اعتماد کنیم که در نهایت همه چیز درست خواهد شد ممکنه اونطور که انتظار داشتید یا میخواستید پیش نره اما اتفاقی که خواهد افتاد بالاخره رخ میده این طرز فکر دو جانبه به مقاومت جیمز استوکدیل افسر نیروی دریایی ایالات متحده که در اوایل جنگ ویتنام اسیر شد منجر شد اون در دوران اسارت خودش ضرب و شتم، شکنجه و دوره‌های طولانی اقامت در سلول انفرادی رو در سلولی به ابعاد سه در 9 متحمل شده بود. اما علو رغم صدمات جسمی، هفت سال بعد همچنان از نظر روحی شکست ناپذیر بود. این به این معنا نبود که اون دوران آستونی رو میگذرونه، چرا که اون نمیدونست چه زمانی آزاد میشه و اینکه آیا اصلا آزاد میشه یا نه. اون نمیدونست چه اتفاقی قرار بیفته اما با پذیرش این واقعیت اون تونست انرژی خودش رو به سمت درونش متمرکز کنه و قدرت و اعتماد درونی خودش رو پرورش بده بین پذیرش عدم اطمینان و پیش گرفتن مسیر بدبینی تفاوتی اساسی وجود داره دومی به معنی تسلیم شدنه اما پذیرش عدم قطعیت در آینده در مواجهه با فشارهای طولانی مدت شرایط رو به گونه ای پیش میبره که بیش از یک احتمال رو دربر میگیره. به جای اینکه یک نتیجه در آینده را به عنوان برد یا شکست در نظر بگیرید، میتونید هر چیزی رو که اتفاق میفته بر اساس شایستگی خود ارزیابی کنید. شاید اتفاقی که افتاده اون چیزی نباشه که انتظارش رو داشتید اما باز هم چیزی در مورد خودتون یاد گرفتید یا میتونید از اون نتیجه برای چالش‌های آینده درس ارزشمندی بگیرید. میکرو شماری نه با خواب کافی، خوب غذا خوردن و ورزش حجم فشار رو در طولانی مدت کاهش بدید. شما تا کنون متوجه شدید که چگونه تحمل منابع بیش از حد فشار به طور همزمان توانایی شما را برای تمرکز بر مهمترین چالشها، مختل میکنه. کاهش ندادن حجم فشار در طولانی مدت به سلامتی شما آسیب میرسونه و قفلت از علائم فشار طولانی مدت به شما کمکی نمی‌کند. بیل, بیل رو در نظر بگیرید که توسط یک استارتاپ فناوری مالی برای ایجاد یک واحد تجاری در یک بازار جدید استخدام شد. هدف شرکت افزایش درآمد از 5 میلیون دلار به 100 میلیون دلار در عرض 18 ماه بود و این هدف به این معنی بود که ویلکینز باید خیلی زود و با جدیت به کار می‌پرداخت. اون بیست ساعت از هر روز رو در جاده و در حال ملاقات با مشتریان میگذروند و خستگی خودش رو نادیده میگرفت و تنها پس از تشنش کردن پشت فرمون بود که فهمید باید در اولویت خودش تجدید نظر کنه ویلکینز به قدری بر روی شغل خودش متمرکز شده بود که در نهایت سلامت و رفاهمون آسیب دید برنامه اون برای بهبودی شامل یک بازنگری کامل در شیوه زندگیش بود که از اصلاح عادتهای خوابش شروع شد. زمانی که اون اون روزهای طاقت فرسای جلسات و رفت آمد رو سپری می کرد به طور مفصلد پنج ساعت می که دو ساعت کمتر از حداقل هفت ساعت توصیه شده است. یک مطالعه از دانشگاه مرکزی کوینزلند در استرالیا اثرات کمخوابی و مصرف الکل رو مقایسه کرده. نتایج نشون داد که پس از بیدار به مدت 17 ساعت یا بیشتر سطح عملکرد شناختی انسان برابر با یک فرد مست با غلزت الکل خونی در حدود 5 500 درصده بنابراین بهتر یک برنامه خواب ثابت داشته باشید و یک برنامه روتین برای انتقال از روز فعال خود به خواب مانند کتاب خوندن یا تمرینات تنفسی داشته باشید تغذیه نیز یک عامل کلیدی در حمایت از عملکرد طولانی مدت تحت فشاره نویسنده توصیه میکنه هر چند ساعت یک بار غذا بخورید تا از افت انرژی بدن خودتون جلوگیری کنید و به غذاهایی با شاخص قندخون یا گلیسمی پایین بچسبید. در نهایت، ترک برای مقابله با فشار یک کار حیاتیه. به خصوص اگر مقدار زیادی از روز خودتون رو در حالت نشسته سپری میکنید یک مطالعه توسط دانشگاه هاروارد دریافت که جایگزینی منظم 15 دقیقه نشستن با 15 دقیقه دویدن اغلب به تثبیت خلق و خوی شرکتهای و کاهش استرس اونها کمک میکنه اولا بندی این سه زمینه به شما کمک میکنه تا انرژی و تناسب اندام مورد نیاز برای مقابله با فشار رو در مدت طولانی به دست بیارید. میکرو شماره ده، سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب اینه که فشار به جلوگیری از دستیابی افراد به پتانسیل‌هاشون منجر میشه. علاوه بر این طرات کوتاه مدت و بلند مدت اون میتونه برای سلامتی عاطفی و جسمی شما نیز مضر باشه. اما فشار لزوما مرفی نیست و اگر روی کرد خودتون رو تغییر بدید حتی میتونه برای شما مفید باشه. وقتی به لحظات اوج فشار نزدیک میشید روی اونچه در خطر نیست روی اونچه در کنترل شماست و بر روی ساده کردن حجم فشاری که باید با اون مقابله کنید تمرکز کنید برای فشار طولانی مدت نیز مشخص کنید که این چالش چگونه به رشد شما یا به دیگران کمک میکنه. با طرح مجدد چالش ها و مراقبت از سلامتی خود از طریق خواب کافی، تغذیه و ورزش برای هر فشاری که بر سر راهتون قرار میگیره آماده خواهید بود.